اسبق ابن نباته میدونید از کسانیه که جز یاران خاص امیرالمومنینه کسی است که تو لحظات حساس آخر عمر حضرتم در محضر حضرت حاضر شده حتی در اون لحظات خاص به حضرت گفته دلم می‌خواد برخی اسرار مگو رو به من بگی خصال مرحوم شیخ صفحه 217 اسبق ابن نباته میگه امیر المؤمنین به من فرمود قال الله عز وجل موسا. خداوند به حضرت موسی چون این فرمود خیلی حدیث قشنگه خیلی قشنگ یا موسا احفظ وسیعیتی لکه به عربعت اشیا موسا وسیعیت میکنم سفارش میکنم تو رو به چهار چیز حفظش کن. خب ببینید باز هم با این مقدمات ارز کنم یه وقت مثلا یک عالم ربانی، یک رجل الهی داره به شاگردش میگه مطلبی میگم قدرشو بدون. خب این شاگرد به اندازه ای که برای اون عالم ربانی ارزش قائله این حرفا رو مهم میدونه. یه وقت یه آدم معمولی میگه مثلا پرس کنید. آقای مطلبی که میگم قدرشو بدون. آدم چون برای اون آدم معمولی ارزشی قائل نیست حرفش هم خیلی بهابش نمیده. امیرالمؤمنین المؤمنین میفرماد خدا فر موسا مخاطب که مو پیغمبر علالعزم مخاطب که خدا خدا داره به حضرت موسی میگه یا موسی احفظ وسیعیتی لکه و عربعت اشیاء چهار چیز دارم بهت سفارش میکنم اینا رو حفظ کن اولهن اول این چهار چیز چیه مادومتا لا زنوب کم مغفوره فلا تشتقل به ایوب غیرک مادم ترا مادامی که نمیبینی زنوب کم مغفوره مادامی که نمیبینی نمیدونی گناهانت بخشیده شده فلا تشتقل به ایوب غیرک پس مشغول عیوب دیگران مشو تو فعلا به فکر ایوب خودت باش چون نمیدونی که آیوب تو بخشیده شده زنوب تو بخشیده شده یا نه به فکر جبران گناهان خودت باش. ثانیه دومی چیه؟ مادم تلا ترا کنوزی قد نفدت فلا تقتم به سبب رزقیک مادم تلا ترا مادامی که نمیبینی کنوزی قد نفدت گنج های من، گنجینه من همانا از بین رفته باشه، پایان پذیر پذیرفته باشه، تمام شده باشه. مادامی که نمیبینی گنج من تمام شده باشه، سرمایه من تمام شده باشه. فلا تقتم ما به سبب اسباب رزق تنخور. روزی رزق میخورید، مگه گنجینه من تموم شده؟ مگه زخیره های من ته ما دمتلا ترا کنوزی قد نفدت، ما دامی که نمی بینی که کنوز گنجینه های من زخائر من الهی پایان پذیرفته باشه ته کشیده باشه فلا تقتمه به سبب رزقه پس غم رزق و مخور از سالسه ما دمتلا ترا زبال ملکی فلا ترجع اهدن غیری مادم مادامی که لاترا نمیبینی زبال ملکی که ملک من زائل شده باشه نمیبینی ملک من زائل شده باشه یعنی معتقدی که ملک من سلطنت من حکومت من سیطره من باقیه فلا ترجع اهدن غیری رجا امید به اهدی غیر از من من داشته باش. من هستم دیگه وقتی من هستم دی با بقیه چکار داری؟